به بزم شاعران میزنیم تا ببینیم امروز در این بزم چه کسانی شرکت دارند شنوندگان عزیز و سخن شناس درود و تحییت ما را بپذیرید امیدواریم بزم شاعران امروز هم بتواند چون هفته های پیشین در شما شور و وجد و احساسی گرم به وجود آورد شاعران گرانقدر امروز ما عبارتند از آقایان عبالحسن ورزی دکتر ابراهیم باستانی پاریزی و شهراشو هنرمندان ارزشمند ما هم آقایان گلپایگانی و فرهنگ شریف هستند البته آقای گلپایگانی تا این ساعت نیامدند و امیدواریم ضمن اجای برنامه به بزم ما بپیوندند میهمان گرانقدر این هفته بزم شاعران یک چهره درخشان ادبی مملکت یعنی دانشمند محترم و نویسنده چیر دست آقای زین العابدین رهنما نویسنده کتاب معروف پیامبر هستند تا خیال میکنم عموم شنوندگان با نام ایشان آشنایی داشته باشند. میهمانان دیگر ما هم هنرمند خوش بیان خانم شمسی فضل اللهی و آقایان رضائیان و پرویز بهرام هستند که زحمت خواهند کشید و بنا میل شاعران ارجمند شعری از آنها روایت خواهند کرد. خب مثل اینکه دوستان شاعر منتظرند که استاد محترم عطای راهنما بعض منبوز ما رو با سخنان گرم خودشون حالی ببخشن و اصلا بعض رو شروع بفرمان بنده اطاعت میکنم ولی آی شما مرد باذوق و عدیب هستید در یک چین محفلی که این قیافه های درخشان هم از لحاظ شعر هم از لحاظ گویندگی و هم از لحاظ موسیقی اینها که باروتی برای امر هستند. اقیده دارم زودتر این باروت را روشن کنید این چراقانه دل رو برپا کنید اجازی بکنید آی سویلی من تقاضا کنم که تماننام کنم کنم باروت برای این که بشه بشید کبریتی لازم دارید این شعله در در جناب آی رهنماست این آه باروت رویشون مشتهل بکنند در هر صورت اجازه بیدید که به من اشتیاق دارم به مطمئن باشید تمام شنومندگان شما اشتیاق دارن که حالا شعر بشنوان و موسیقی بشنوان و گویندگی که واقعا چهره های درخشان ما که از اینجا شروع کنید بعد اگر مجال شد من یه خاطر قشنگی برای شما نقوم میکنم ما که بچه حق شنویه هستیم و انتصال هم بکنید بعد پس خب. عظمعری نمیشه شوهرو برجا به سوالی واضی بود که اول شروع کن. اه من آه من برزی برزی روز... از... کنم ولی وقتی واضی میگم سنش شما چقدر نمیدونی والله اینجا چندندگونم نمیدونم جزو اسرار زندگی منه اجازه میدین که سکوت کنم در مقابل سوال در مقابل اداره آمار, ام... اداره آمار که این سر نیستن میدونن ممکن از اون سوال کنیم ببینم نمیگن به 66 بندر اداره امور که پیش خودتون بمونه باشه برات کسی که نتابه ولی علایق حال بنده سنم بله بایسته که برای اینکه سنم سننم رو بگویم اون شعر سعدی رو گفتم خدمت خواهش مانه برای درست که درست بسیدیم اینکه در رصف بنده سروده شده این که پنجه آه در خوابی مگر این پنج روزه در یابی حاشیه 55 روزیتونه در همین 55 نیست در همین حدودا علایم کمو میشه بنده زیاده چونه نزنید خودمون دیگه راجبش بگم آخه شرماندا علاقه‌مندن آقای عبدالحسن ورزینی چهره ادبی سری مملکت میخوام بشناسنشون یه خورده بیشتر توضیحاتو خودتون بدید همین عبدالحسن ورزینی کی میدونه بنده اطلاعاتی اضافه بر این اطلاعات مردم بفرستید بنده اصلا چهره ایشون من هم. که کودکستان میرفتم از ایشون یک غزل خیلی ناب پیدا در 40 سالگی دروده بودم شما نمی تونید شنوندگان نسبت به بگاه ایشون علاقه علاقمند هستن به بگاهشون و بدونن که حالشون چطوره بیوگرافیشون چیه کثرت سنشون اولا بفرمایید شما در مملکت چطور هستی توضیح بفرمایید چه نظر بفرمایید عذرا کنم که این راجبه این موضوع که دوست شاعر عزیز من آقای صاحبوا در هفته گذشته توضیح دادن که بنده چیکارم ولی خیال می‌کنم اون شغل قضایی که ایشون به من نسبت دادن شغل قضایی منظورشون قضای با ق و زار بوده نه کار قضایی که بنده افتخار دارم بعدو گفتم البته که و شنندگانم بدانند که آقای ورزی قاضی عالی رتبه وزارت دادگستری در حال در دادگستری با شغل قضایی افتخار خدمتگزاری خیلی خیلیتون بفرمایید سننده در حدود 50 سال هم تو گذشته کردن یعنی 1293 ولی علی حال خیال می که سن برای شاعر من که شاعری سم ولی به کسی که با ادبیات سرکار داره سن زیاد مطرح نیست من امیدوارم که دل انسان جبا حالا ما سنتون نمیگذریم از به 50 سالگیتون هم کار نداریم حالا میرویم بر سر دلتون و عشقتون شعرتون بفرمی ولی نگذشتید خدام حفظه من, من بالاخره موقعی مارو واسط کردی <تصفح> <تصفح> امیدوارم بیرونی دو قطعه شعر اینجا انتخاب کردم و یک قطعه رو سال گذشته اسمش است و خواهش کردم با رضایان رضای بسیار گرم پر و تولد خوانند در و یک غزلی من خیال می گیرم باز مشتاق باشن شنوندگان با صدای شما صدای خودتون رو با کمال افتخار یک غزلی ساختن که این آخرین شعر بنده است که چند روزی پیش ساختن و به همسر خودم تقدیم کردن انگیزه تون برای این شعر به خاطر همون خود همسر بنده همسر شما موجب میشه شعر بس و بسیاری دیگه از اشاره بنده که از چند سال پیش این طرف امیدارم که از سرز همسرتو نباشید که قربون <تصفيق> <تصفيق> از بلا نترسید یه زن بلاست ولی بلد بلد بلد بلد انشاءالله هی خانه بی بلا نباشید انشاءالله موسیقی خوی نوبه ها راید از نسیم آبو شد حطر کنچه میریزد از لبان خاموشد تا از آن لب نوشین آب زندگی خوردم عمر جاودان دارم در بهشت آبوشد بسیار خوب گردل خزان دیده چون شکوخ خمدان شد صبح نوبهاری را دیده در بنابوشد بانگاه سر دادم بانگ آرزوها را تا برون کشم حرفی از نگاه خاموشم برد عشق گرمم را در سپید دم دارد گوهری که میتابد برد عشق گرمم را در سپید دم دارد گوهری که میتابد چون ستاره در گوشم پرتوه نگاهت را در ستاره ها بینم پرتوه نگاهت را در ستاره ها بینم نیست جدا از من تا کنم پراموش هم نیست باکم از پیری بیرم دنبال همون سهار سنفر و دیر <تصفح> نیست باکم از پیری من که باور نمیکنم تو شو پنجای سارتون باشی بخواهم تارف نکنم خیلی جوان ترین این دوتا شماعزم چکرم برای این یه حقیقتیست نیست باکم از پیری تا به بوسه می گیرم مستی جوانی را از لب غدهنوشم. خوابگاه راه آغوشت عطر یاسمن دارد در بهار جاودان از نسیم آغوشت فخ فخ جی. شو... این غزلت خامسیه بودید من تمامش رو اداء کردم و این غزل شد میتوانیم بوده احساسات باکنیم مقالا برای تو خیلی هم خیلی هم خیلی های بنده مثل همه کارهای دیگه هم یه تو... جوری تموم میشه مثل اینکه ناتمامه برای اینکه تخلیصی ندارم و این تموم میشه تخلیص تقریبا به من به قول متعددین دموده شده بردیه چیوه کارش ما تخلیص شما ورزیانا که کارش خیلی خب. بله دوست عزیز آقای رضاییان چرا شما رو بخاطرشون بفهمید آقای صولی خاطره نمیدونم بس من فهمند. یادم رفت آقای ورزی که از کنم خاطره ای بفرمایید بله خاطره بفرمایید بله خاطره ارز کنم. عجب عجب بنده میخواستن خواهش کردم که اجازه تمن که به جای یک خاطره دو خاطره arz بفرمایید ستا بفرمایید برای اینکه یه مضمون تازه‌ای به دست دوست عزیز ما آقای سحابی افتت که خیانت نکنه که من یاد من انداختید عزیز هم به یاد دارند که آقای صحبا در باره طرز تقدیر سرکارش شوخی کرده بود <تصفيق> و حالا منتظر بودیم آره مثل اینکه جدی بود, این جدی بود. من گفتم شوخی شما شو نه حقیقتی حالا خود سرکار می توانید که در این کرسی دفاع بفرمایید که چی هست ریان ما که وارد نیستیم بنده با اینکه قاضی هستم ولی ایشون بنده رو ریانمند به قاضی رفتن, رفتن ریانمند محکوم کردن بنده ولی علیه حال من چرید میدونی که حکم غیابی همیشه میشه مش استینافت در حال دوست عزیز من آقای صحبا ما رو محکوم قیابی کردم و حالا اینجا بنده به عنوان سیناف شرکت کردم جوابیم جوابی هم برای ایشون ارز کردم و این که ارز کردم دو خاطره یه فیده بر اینکه آی صحبا مضمون تازه پیدا میکنن اینه که تصور نکنه که بنده در گرفتن سور معتقد به تعددام خاطره هم اگه قرار بشه بگم دو تا میگم به جای یکی <تصفيق> <تصفيق> یا دو مثلا یه فقط در مورد تعدد محتقی محتقی لده محتقی لده محتقی نه تعدد متقدیه لا مديه ازدواج متعدد من دیگه نفرمایید زاله اگه کاری وقت حضرت واسه هم که تفرقه افتاد تو خاطره ها و اشعار الان شعری رو فرمودی یک خاطره بفرمایید بعد آقای رضاییان برای تنوع شما رو بخونن خاطره بعدیتون اگه استدایی من رو میفذیری خاطره رو بعد از شراقه درداریم چند سال پیش بود که بنده بنا به دعوت امه خودن خانم سکینه ورزی که خیلی مورد احترام منه رفتم به لندن به اتفاق خوهرم خوهرم رو اول در یک آموزشگاهی براش پیدا کردیم و گذاشتیم که به تحصیل ادامه بده بعد خود بنده قرار شد که به اتفاق عمه بریم بعضی از کشورهای اروپایی رو ببینیم و من برای یکی دو سال به انگلستان برگردم. سه. در اون آموزشگاه که خواهرام تحصیل می‌کرد، به من گفت دو تا خانوم از خانم‌های ایرانی هم وطنمون اونجا هستن که میل داشتن که چون شیرا یکی منو بودن، با من آشنا بشه. ولی من فرصت نکردم که این ملاقات انجام بشه. و رفتم به پاریس و و از چند ماه برگشتم به لندن. بله. اتفاقا خواهرام حادثه‌شون عوض کرده بود. ولی قرار بود که اگر آدرسش عوض کرد در سفارتخانه آدرس جدیدشو پیشگیر رفقای من بذاره. بذاریم شما ساعتتون نمیگونید تو شده؟ نخیر از خدمت از این از این مجلس بهتر من ندارم. یه ساعت ماجرام دادن که بنده چقدر انرژی میتارم. به هر <تصفيق> حال ما رفتیم سراغ اون رفیقمون گفت اتفاقا امروز ظهر خواهر شما با دو تا دوست خودش همون دوتا تا خانم به اصطلاح ناهارجو در این رستوران می‌خوردن و الان هم امشب هم اعتبارم که منزله یکی از همین خانم‌ها مهمان هستن و تلفن گرفت بعد خانم میزوان اومد پای تلفن رو گفت یه شاعر آواره از کنم از تهران آمده اینجا که یه قدری ناخونشم با ستار آشناست و میدارید ستارش رو گوش کنید و ما رو غافل کرد خب ما یه چند تا ناخونی به ستار زدیم و بعد اون خانم خواهش کرد که خب یکی از شعراشون رو بکنن من همه که از شعرام رو شما به ستار ناخون میزنی ناخون نگید همون ناخون ناخون نگید تا بهتره. کمتریه نیست تار میزنی منظورم این بوده. البته خاصی نمیواره خصوصی کمتر ستار به خصوص دیگه وقتی سازی مثل ساز آقای فرهنگ شریفی نا رو نمیشناوه دیگه مثلا اینکه خجرت میکشه ستار. گفتن که شعری آماده است و ستارم میزند و شعرم میگه ولی منو معرفی نکنه. من یه شعر خودم خوندم. اتفاقا این شعر سابقا مونچر شده روزنامه این خانم دیده بود. برگشت من گفت آقا این شعر مال ابوالاسم اسم شما اسمتون چیه گفتم چیکار دارید به اسمم گفت ابوالحسن ورزی نیستید گفتم نه گفت این شعر مال ابوالحسن ورزیه گفتم نه خیر ایشون از من دزدیدن گفت آقا این چه چه چه اعتراض نكنید گفتم خب نبودم که اعتراض کنم بعد گفتم اجازه می خوام این مثلی براتون بزنم گفت بکنید گفتم یکی از این کسانی که عادت دارن به این شعر دیگران رو به اسم خودشون بخونن یه وقتی یه غزل سعدی رو در یه به اسم خودشون یه کسی اعتراض کرد این غزل مال سعدیه گفت نه خیر مال نیست من ساختم گفت آقا من در دیوان سعدی دیدم گفت سعدی از من دوزیده گفت آقا هفستان شدیده وقتی که سعدی این غذا رو ساخت تو نبودی که گفت اگر بودم که نمیذاشتم به دوزید در حال گفتم که منم نبودم که ك... این آقای <تصفيق> <تصفيق> بعد این میزبان بنده رو پای تلفن خواست ولی او با اولین کلمه که من گفتم من رو شناخت و جیخ کشید داداش و به لاخره شد که بنده هستم و شعر رو بره نظر خود بنده هستم بالاخره کار این تلفون به شرکت بنده در مهمانی اون شب اون دوست خوهرم کشید و شرکت اون خانوم در زندگی بعدی بنده عجب خانوم بهتون شدن؟ سر, ام ام ام ام سر بنده هستم بسر بنده باشیم و با تلفون به جای نکنیم بله کردین شعر نکنیم بله بله <تصف> اگه هم خوندیم تو معرفی کرد و برم علیک. به حال یه روزی بعد از یک چندی که از ازدواج ما گذشت من نظرم پرسیدم که چه چیز باعث شد که شما خیلی جالب بوده داشت چه چیز باعث شد که شما حاضر شدید که زن من بشید برانمون از در <تصح> یکی اون تلفن و دوم که اینکه دیر تلفن اون شب به استرا گفت چون جور خوبی شروع شد آشنایی ما به خصوص من که از دوره دویرستان و دویرستان با شرایی تا آشنا بودم جمعید همون چایی رو و دو که دیدم یک نقطه به اصلا اخلاقی تو در من خیلی تاثیر کرد و من جاله بود و اون این بود که دیدم تو اسرالی ندارید که اگر نقطه زفی داره تاثیر پنهان کنی بلکه بیشتر آشکار عاشقانه بسیار خاطره داشتن که حتما تصمیم گرفتن که با تو زندگی بکنم و اگر بتونم تو رو اسراقت کنم که <تصفيق> درها خاطری بود کش کردم آدم بود چه خاطری از این بهتر که انسان زن شیردوس پیدا بکنه و زندگی خودشو واقعا خیلی افسر منتہی بشه خب آرزوهایم برای روان شاعر ملی می هستم خیلی تشکر خیلی متشکرم یه قراره ما با بگذری اگر بهبایی گفتم به شعرم نیست به صدای آقای رضاییم و ساز آقای شریف بروه ممکنه بازی کنیم به شعر خود رای بهبایی رو سال گذشته زندگی من بهشت بود سال گذشته زندگی من بهشت بود زیرا که با بهشت روخش آشنا شدم آسوده گشتم از همه غم های روزگار آن شب که در کمند غمش مبتلا شدم یک شب در خلوتی که پر از شور و شوق بود آن طامت کشیده در آمد ز در مرا چشمان مست او که بر رنگ شراب بود آشفته کرد و مستوز خود بی‌خبر مرا چون دوختم نگاه پریشان خیش را بر آن دو چشم روشن خندان راز او جانی دوباره داد دل مرده مرا آن برق زندگی که دمید از نگاه بود در آسمان پرشفق چشمهای او در آسمان پرشفق چشمهای او صبح بهار اشق و فروغ امید بود بر چهرش شکفته دو باغ آرزو در خندهش نفته هزاران نوید بود از اولین نگاه که کردم به روی او صد باغ گل به جان و دل من شکفته شد نوروز من به شام زمستان دمیره گشت و نوبهار عشق به بهمن شکفته شد چون مست از نوازش چشمان او شدم گیدم چه زندگانی من از برای اوست هر حرف او ترانه پرشور آرزو هر کار او نشانه اشق و وفای اوست سال گذشته بود که مست نشات اشق خندیم یارخیش ادوی زمان را سال گذشته بود که قافل ز سرنوشت بستیم وحد زندگی جابدانه را می گفت او که زندگی ما چه می شود گفتم که زندگی به مراد دل من هست بستیم صد امید به آینده دریق باور نداشتیم که آینده دشمنه روز جدایی آمد و دامان من گرفت. روز جدای آمد و دامان من گرفت آهوی من که از همه عالم رمنده بود. گریان و عشت بارزه هم دور می شددیم. اما امید در دل ما ن خنده بود. سال گذشته بود که می خوندم این سرود. شادم که در کنار تو زیبا نشستم امسال پس چه شد که چنین خار و بیامید با آرزوی مرگ در اینجا نشستم آفره آفره آفره من یک سوالی از دوست برزی بکنم بخیان میکنم سوال منم بفرمید بفرمید بون اینست که ایشون بهتر میپسندن رمنده بود یا رمید بود برای اینکه خنده داره قافیه فال خاطری دیگه اصلا که این خاطره رو یه قدری هم خوشمزه است به هم برای بعضی های درسی است تا خیلی مختصر از می‌کنم یه روزی با همین دوست عزیز اون آقای صحبا رفتیم شبی به رستورانی غذا خوردیم یه دوستی داشتم من که نویسنده خیلی چیر دستی بود مرد بسیار دانشمندی بود بلکه خیلی سهل انگار بود در طرز لباس پوشیدنش و نظافتش اینها باید. مثلا این هر شش ماه یه دفعه ریش می‌ذاشت یه آدم بله جدان از اون یه وقت آدم رو می‌دید با دو قبضه ریش در حالی که ریشو نبود و بعدم یه روز می‌دید که از تحت تراشیده ریشو اتفاقا از بچانسی ما اون شب موقعی بود که دوران ریشش رو میز آمد ما رو از دور دید و ما سر میز مان سر میز مان قیافه صحبا تو هم اون شب به علاوه می‌خوردیم و اومدیم بیرون و بیرون رستوران سهبان ها رو گرفت به بعد پرخاش که بابا این چه قیافه بود و اونجا نشوندی شامو و, شام و ما کردی گفتم آقا مرد با فضیلتیست دانشمندیست گفاره اونجا که جای فضیلت و دانشی دانش. نا نبود ناستیم تفریه بکنیم یه قضیه گذاشت یکی دو ماه بعد اتفاقاً با صحبا عجل همون رستوران رد میشدیم این رفیق ما رسید ولی موقعی بود که اون مدوران طولانی ارز کنم ریش راشتنش گذاشته بود و ریشی تراشته بود و لباسی عوض کرد رو... من تکه به صحبا معرفی نکردم برای که پیل کردم که شناخته و یه معرفی کردم قبلاً اتفاقاً معلوم شد که نشناخته ای رو بعد گفتم که صحبا می بریم اتفاق ایشون یه نهاری اینجا بخوریم تو این ریستوران گفت من از این ریستوران هستم بخشه برم گفتم چرا؟ گفت ممکنون مرکی ریشوه کسی کسی که اکبیر اونشبیر یه این بدر ما رو باز در بیرید نه خیلی نمیان در آخره من که دم کار به جای باریک میکشه و اینا گفتم آبای صحبات داداشت این همون ای... آغاز کردان جدوش ما ایستوه گفت چرا توحیم به آقا میکنیم این کجا اون مرکی عجب روز مبارکتون شما راجب آقای صاحب شری نداری جناب هم برای همه تماشات شما یه شنبهی رفتم ولی مثل اینکه تورانی شد عریضه بنده حالا به همین خاطرش میگه قایق من پی سور در هر کجا رفته ام تو را دیده آنجا و قا رفتم رساند ز بیراه خود را به من به راهی که از تو جدا رفته هم. چو شیطان به افسون زدی راه من اگر در حریم خدا رفته است سوی کلبه تنگ و تاریخیش زبیم تو در اختفا رفتم <تصفح> گرفتی ز من لغم را چون اقاب چون گنجشک اگر در هبا رفتم به انبار خود دیدمت هم چون موش چون موشک اگر در فضا رفتم <تصفح> <تصفح> <تصفح> زبیم تو برگ و نبود و هر جا من بی رفتم به سوری که با تو شدم هم غذا تو گویی به سوک و ازا رفتم به هر جا که تو میزبان بوده ای به مهمانی. اجتهاد ها رفتن. زسوری <تصفی> که <بازور تصفی> بزور <بزوری. تصفی> با زور می که تو میزبان بوده، ای اشاره منصوریه که بعد به بنده داده دلینی که او عوضی به جای منصوری شده بود، این اشاره مونه. به هر جا که تو میزبان بوده ای، به مهمانی اجده ها رفتن. یعنی ممکن خودم خورده باشم. زسوری <تصفی> <تصفی> که با زور دادی به من، به یک باره از اجتهاد رفتم. چنان بی غذایی به من داده ای که دیگر زیاد غذا نخوردم. حالا دیگه حضرت راهنما و نوباط با آقای دکتر باستانی می‌ازم اجازه بفرمایید من یک سابقه ذهنی به شنوندگان عرض بکنم آقای دکتر باستانی مترادف هستند با قذل لتیف و زیبای یاد آن شب که سواب بر ما گل می‌ری و این غزلشون دیگه فلسیاب الروسل اشهاد مشهور است و همه می‌دونن این غزل رو بفرمان البته قبل از اینکه بفرمان ایشون اجازه فرمایید که سند خودشون بفرمان در باره خودشون توضیح بدن اشتغالشون گفتگوی درباره باره سند اینجا در حضور استاد بزرگوار جنوب آقای رهنما و استاد محترم آقای ورزی و آقای شهراشو برای بنده ایجاد خجالتی نمی کند در اینکه برحال از همه اقایون کچکتر ولی باید اینجا من معاف کرد که در ۳۴ در قریه پاریز سیر جان شده قریزه در قریزه یکی از کوهستان های سیرجان است که سیرجان خودش از تقابق کرد. صحیح. منجای باصفایی که چنین مصوری بیرون ده. بله ده. بله. سبا گل می‌ریخته در کاریز می‌ریخته دیگه. کوستان بسیار باصفاست. در واقع بهشتی است در میانه بیابان‌های کرمان. تا سیرجان در فاصله فاصل داره از هم تا کرمان. ببین ما این فاصله از کرمان تا جهرس 80 درصد. ما در 200 درصد خی داریم. صحیح. گفتم این گل می‌ریختید از روی شما. در واقع محیط پاریس در من تاثیر کرده است در سرودن این شعر و این شعر را هم در همونجا گفتم ما در کوهستان تداعی گل می‌ریزه دو ماه از سال را گل ریزان داریم در ما سه. برای اینکه وضع آب و هوای اونجا طوری است که درخت‌ها به تناوب گل می‌دانند بله چطور باید شما در این شهر زندگی کردید ابد بله این شهر من من هم می‌خواستم به خاطر از همون پاریس داشتم ویژه یاد و آن شب که سبا در ره ما گل می‌ریخت بر سر ماز در و بام و هوا گل می‌ریخت سر به دامان منت بود و شاخ بادام بر رخ چون گلت آهست سبا گل می‌ریخت خیال خاطرت هست که آن شب همه شب تا دم صبح گل جدا شاخ جدا جدا گل میری آمد. نسترن خم شده لعله لب تو میبوسید خز گویی به لب آب بقا گل میری زلف تو غرقه و گل بود هران گاخ که من میزدم دست بدون زلف دوتا گل میری تو به من خیره چو خوبان بهشتی و سبا چون عروس چمنت بر سر و پا گل میریخ گیتی اون شب اگر از شادی ما شاد نبود راستی تا سهر از شاخه چرا گل میرید شادی اشرت ما با گلفشون شده بود که با بو پای تو من از همه جا بودم آقای دوکر باستان اگر اجاز بفرمایید شعر بعدتون رو خواهش کنیم آقای پرویز بحرام بخونم بسیار باید مهمان ما هستند و حیف هست که شعری از ما رواید نکنند خواهش میکنند دارم مگرین که ایشان بخونند که جلوی خواهش میکنند بسیار آقای <تصفح> دوکر بس از عمری که دل در عشق او افسانه میخاند هنوزم آن بطه دیراشنا بیگانه میخواند. به خون دل نوشتم شرح حال خیشتن اما نمیدانم که او این نامه خاند یا نمیخاند به خوردی من گرم در بانگ مرغ شب که من دانم چه ها در نیمه شب این مرغ دیوانه میخواند. چکار دیده حیرانم که با فقر دل مسكين همین مهمان تازه اندر این ویرانه میخواند نهر خامیز پایان شب عاشق خبر دارد که فصل آخر این قصر را پروانه میخواند که فصل آخر این قصر پروانه میخواند خی خوشی آقای شما خیلی ساکت نشستید. اولا به جمع نزدیکتر بشید. در ایران تحت خورشید در شمال زرره خود را بزرگ دیدن شایع ادب نباشد. بعد شما به محصر اساتید مسلمه زمان از من ناز کاری بر دین ما بکنید. بس کنم شما پشت اساتید مسلمه. خاطر جنای سرکارم در به آزادی یکم. باحال شهری بفرمایید و چه فرمایید چه بعدتونم واسه یوش بکنیم که یک از مهمانان ما بکنید. خیلی اگر که باز آقای شهرآشوون باید بیشتر معرفی کنیم ایشان مشهور هستند ولی این غزل من بار سنگینم مرا بگوذر و بگوذر از ایشون باز این هم شهرت عجیبی پیدا کرد البته بسیار خوب غزل پرهاول و سُور واقعا و شاعرای توانای ما هستند بدون تردید و افتخار خدمت فرنگی هم دارن بله خیلی متشکرم آ آشش توخوا به بکان می پس وجود گلپایگونی با حالی بیشتر ب شما مس ممسیم پسش من میخواام خیلی دیقد کار مشا سرکا چقدر تفریح وااقیان باشه معاف از خب من پس از عرض سلام، مظرت می‌خوام از اینکه دیر اومدم و گرفتاریم انتخاب شعر بود برای این برنامه. از اینکه دیر اومدم میبخشی. دیگه علی شاعر شاسته، دیگه راحت تایی کارا انتخاب شعر راغول بگم. من فکرم که خب بیام خدمت آقایون یهو منو مایوس کنن شعرشونو ندن به من. خب دیگه این <تصفح> نه من با کمال میل من تشویقی جهاد. انتخاب کردم به نام مثنوی عشق که اون در این برنامه می‌خونم. خواهش می‌کنم از معرفی شاعرش هم معذورم تا اینکه خودتون پیدا کنید دیگه مشاهیر. چرا نمی‌شواره اینو نشون گم شده است در معنا در این برنامه دیگه بزنه بیساری که نبود که ولی به هر حال دفعه نشاطنگی زمونم نشاطنگی زم ما تم عجب رسوا کنم جنوس در hồn من چه سرها است تو سحر او ای شو پتم خالی خالی میخواست که آقای شهرآشوب سر حال بیان و قدرش رو باحال‌تر بخونه خیلی می‌خوام اینجوری حال سر خودنمیشه در خب همه گوش علی اکبر حالا بیشتر باحال کرامی ها بدوگ شناب توان ای باو رجان تاکی کی خداوندا تحمل بر چین باو گران تا اوکی نمی خوانم از این صورت بسیلی سرخ کردن ها توان کرد نقش حسرت و بسرت نهان تا اوکی گرفتار آنکه بیرو نا اومدان از دوزخ هرمان شدو داوزیم سرسودن به سخت آسمان تا دیگ گرفتم آن که بیرو نامدن از دوزخ هرمان شدو داوزیم سرسودن به سخت آسمان قدشت. تا دیگ به گردون می برد خاک وجودم گرد با که ای خاکت به سر دل بستگی بر خاکدان قدار آقای چگون بازیچه چوگان تقدیرم نمی دانم که وقتم می دهد بازی به دست اینان خاکی را به خود چون موج می پیچم زبست آوارگی یارم شکیبایی بدین سرگشتگی ها میتوان خیلی خوبی آفر. آفر. آفر. آفر گرفتم آف به عشق را در دل نهان کردم نهان مانه به ابر تیر خرشی دید چنان تا به فقرم آزمودی تا جوان بودم خداونده خرک گم کردم از نسیابون پیگی امتحان تا خیلی خیلی خب دیگه آلا حیف است که از صدای خانم فضلاللهی استفاده نکنیم بینید بیان لطیفشون صدای لطیف کنایی از آواز است ولی اشان بیان نگرد و من خواهش میکنم شعر دیگر آقای شهر آشو برو خانم فضلاللهی زحمت باید من شکلم خواهش بکنم باید کم باید پس ه من بار سنگینم مرا بگذار و بگذار نیکم بدم اینم مرا بگذار و بگذار دانم ز مسکینان به تابی چهر از ناز انگار مسکینم مرا بگذار و بگذار برمرگ مرگ خودسوزی عباس میگه منشین به بالینم مرا بگذار و بگذار دردم نمی داند کسی بگذار تا مرگ کوشد به تسکینم مرا بگذار و بگذر در دیده رویاه ادم سنگین نشسته در خواب شیرینم مرا بگذار و بگذر آینه دل تیره از زنگار غمهاست هاست بیرنگ و رنگینم مرا بگذار و بگذار بگذار جز کابوس ناکامی نبیند چشم جهان بینم مرا بگذار و بگذار بگذار تا در ماتم ویرانی خیش چون جخت بنشینم مرا بگذار و بگذار خاله خاله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 یعنی گاهی قافیه داره گاهی نداره و مبتنی برای احساس است عنوانش ای آرزوی من زوی من تو آن همای وقت منی که از دیار دور پرپرزنان به کلبه من پر کشیده ای. بر بام من کبوتر ارشی خوش آمدی بر بام من کبوتر ارشی خوش آمدی در کلبه هم بمان زیرا تو همچو من یک آشیان گرم محبت ندیدیم با من بمان که من یک عمر بی همراه هر نسیم به گلزار عشقها در جستجوی یک گل خوشبو شتافتم میخواستم گلی که دهد بوی آرزو اما نیافتم شب‌های بستر راز با دیدگان ماک بر مركب خیال نشستم به صد امید دنبال یک ستاره فضا را شکافتم میخواستم ستاره امید خیش را اما نیافتم. بس روزهای تلخ، غمگین و نامراد همراه موج‌های خروشان و بی‌امان تا عمق بیکرانه دریا شتافتم شاید بیا بمن گهری که خواستم اما نیافتم امروز یافتم امروز یافتم, یافتم گنگشته ای که در طلبش عمر من گذشت اما کنون نشسته مرا روبروی تویی آن کس که بود همراه باد سبا منم آن گل که داشت بوی خوش آرزو توی دیگر شبان تیره نپویم در آسمان تو آن ستاره ای که نشستی به دامنم همراه موج در دل دریا نمیروم تک گوهرم تویی که شدی زیب گردنم ای آرزوی من تو آن انهمای بخت منی که از دیار دور پرپرزنان به کلبه من پرکشیده ای بر باب من کبوتر عرشی خوش آمدی در کلبه بمان زیرا تو هم تو من یک آشیان گرم محبت ندیده موشین لبی که جان به تنم میدمد توی عمر منی که تاب و توان داده ای به من با من بمان که روشنی بخت منز توست آری توی که بخت جوان داده ای به من با من بمان. روشنی بخت منز توست آری تویی که بخت جوان داده ای شنوندگان صاحب دل و سنج برنامه ما به پایان رسید بنده به اتفاق استاد زینولابدین رهنما و آقایان دکتر ابراهیم باستانی پاریزی عبالحسن ورزی، شهراشوب، خانم شمسی فضلاللهی و آقایان پرویز بهرام، رزائیان، گلپایگانی و فرهنگ شریف شما را بدرود میگوییم و شما را به خدا میسپاریم. دلتان خوش، لبتان خندان باد. روز بخیر.